بسم الله الرحمن الرحیم چقدر خوبه نماز اینجوری باشه خدا نگاه بکنه به ما ببینه ما کی نیاز داریم نماز بخونیم کی نیاز داریم از دنیا بگیری مثلا خدا ببینه ما داریم عصبانی میشیم این دفعی بفرماد معزن ازان بگو الان با ازان و نماز این باید از این حال در بیاد بیرون یه دفعی خدا داره میبینه که ما میریم که برای دنیا قش بکنیم بفرماد معزن الان برای این ازان بگو این داره قش میکنه همین الان باید بیدارش کنیم بعد اون یکی برای افسرگه میشه میره تو خیالات و قصه های دنیا تدا بزنه محزن محزن محزن الان نیم ساعت گذشته ولی برای این الان ازان بگو این همین الان براش ازان بگو چقدر خوب بود ازان و نماز. هر یک از ما با دیگری فرق داشت و هر یک از ما متناسبه با خود ازان دریافت تو فکر میکنی خدای تو آجزه از این که هر کسی را جداگانه برایش زمانی را برای ازان و نماز تعیین کند متناسب آن لحظه ای که او نیاز دارد قطع کند و بیاید سر نماز و تمام این زمانها یکسان باشد تو اینقدر نمیدانید من خدا هستم این ازانی که برای همه از یک معزنه در یک زمان میگن ازان خصوصی است برای هر کسی هر کسی در اون لحظه در حالی است که همان لحظه باید از حال خود خارج شود و برود سر سجاده نماز بیستن تو دیدی من برای همه دارم میگم این یعنی کسی رو رعایت نکردن شما فکر کردی اذان عمومی میگن رابطه خصوصی من اذان ازان مختل شده نمیدونی من خدا. یا من قالوه سمع عن سام ای خدایی که هزاران نفر با تو سخن میگن مشغول نمیشی دیگری رو گوش ندی اصلا از آن فقط برای تو یکیه اینقدر من با تو در حال تعامل با خدا زندگی کنم یکی از آثارش بدی بد می‌خوابی درد هم زیاد تخوابی زود میپری از خواب یه خدای ادامه بدیم فرمود انا جلیس و من ذکرنی من همنشین کسی هستم که به یاد منه ما با همیم با هم داریم و گفتگون میکنم آزاده آقای بحجت که بابای من خودسن اواخر دیگه بیشتر شده بود میرم گاهی از اوقات میومدم صدا میزدم طول میکشید تا برگرده میرفت کجا میرفت اونجایی که همه ما باید ده. پیش همون خدایی که خدای من و تو هم هست و همونقدر برای من و تو وقت میگذاره و همونقدر برای من و تو علاقه داره که پیشش بریم و همونقدر حاضره به ما لذت بده و همون جایی میرفت که همه بناس در بهشت و رزوان الهی اونجا برم بله بعد جزئیاتی رو تعریف میفرمودن ارز کنم به ایشون که خب بله معلومه ایشون زمان جوانیشون به مرحوم قاضی نامه می نوشتن کسی سه روز رفت پیش خدا و تو این دنیا نبود و بعد از سه روز برگشت بعد بعد رو قضا کنه حکم شرعیش چی میشه بعد مرحوم قاضی به کسی از دوستانش نامه نوشته بوده که آقای بهجد این سوال رو از من کرده من می دونم که این سوال در مورد خودشه ولی ایشون گفته که کسی این گونه بود چه باید بکنه خودشه اینجور چرا باید رفت بیش خدا؟ چون لذتش خیلی بیشتر از این حرفاست حالیت کلمه حالی تر رو میدین ولی چی گفتم برای اینکه دیگه دیگه لاتو اوباش عالم هم میفهمن لذت چیه شما لذت نمیخوایی بفهمید نیچی اگه اومدی رفتی اصلا هنر نکردی این خدا من لذتی بردم که همه آهل عالم میفهمن لذت لذت دیگه اگه نیومدی فقط خودتو سرزنش کنی